فصل نو بعد از دو سال پایان آن روز آن شب و روز بعدش را فقط با پولیس ها، عکاس ها و خبرنگارانی که مثل مور و ملخ در خانه گتس ریخته بودند به یاد می آورم. جلوی در اصلی یک نوار کشیده بودند و یک مأمور ایستاده بود تا جلوی ورود مردم کنچکاف را بگیرد. اما پسر بچه ها خیلی زود فهمیدند که از حیات من می توانند وارد حیات گتسبی شوند و همیشه تعدادی از آنها با دهان باز در اطراف استخر جمع می شدند. یک نفر که ظاهر موجهی داشت و شاید یک کارگاه بود، آن روز بعد از ظهر وقتی جنازه ویلسون را دید از لغت دیوانه استفاده کرد و لحن قاطع او سرنخی به گزارش‌های صبح روز بعد روزنامه ها داد. اغلب این گزارش‌ها کابوس ترسناکی بودند بر پایه حدس و گمان، پرآب و تاب و غیرواقعی. وقتی شهادت میخائیل ایس در بازجویی زن ویلسون را به مرتل آشکار کرد، با خودم فکر کردم که کل ماجرا خیلی زود به شکل چرندیاتی پرکشش برای عموم مردم در خواهد آمد. حتی کاترین که ممکن بود پرده از روی حقیقت بردارد، یک کلمه حرف نزد. حسابی از خودش جربوزه نشان داد و با چشمانی که از زیر ابروهای نقاشی شدهاش بیرون زده بود، به مأمور تحقیق چشم دوخت و قسم خورد که خواهرش اهل شیطنت و شرارت نبود. هرگز را ندیده و با شوهرش خیلی هم خوشبخت بوده. چنان ادعای پر آب و تابی کرد که خودش هم آن عراجیف را باور کرد و های های در دستمالش گریه کرد طوری که گویا حتی طاقت شنیدن این حرفها ها را هم ندارد. به این شکل بود که ویلسون به یک مرد از سر قص دیوانه شده تنزل پیدا کرد تا قضیه به ساده ترین وجه ممکن باقی بماند و پرونده همینجا ختم شود. اما همه این قسمت از داستان دور از ذهن و غیر منطقی به نظر می رسید. من خودم را طرف گتسبی میدیدم، آن هم تک و تنها از همون لحظه ای که حادثه را به وست اک خبر دادم هر حدث و گمانی در مورد او و هر مسئله عملی و مفیدی به من ارجا می شد. اولش خیلی هیجان زده و گیج بودم ولی بعد در حالی که گسببی دراز به دراز در خاش بدون حرکت و نفس کشیدن و حرف زدن افتاده بود. ساعت به ساعت این حس بیشتر در درون من قوت می گرفت که مسئول هستم چون کس دیگری علاقمن نبود یعنی به آن شکل از رسیدگی جدی که بالاخره هرکس تا حدودی استحقاقش را دارد اهمیت نمیداد. نیم ساعت بعد از اینکه که جنازه را پیدا کردیم به دیزی زنگ زدم به حکم غریزه و بدون لحظه درنگ به او زنگ زدم اما او و تام آن روز بعد از ظهر چمدان را بسته و رفته بودند آدرس نذاشتن؟ نه. نگفتن کی برمیگردن؟ نه. میدونید ممکنه کجا رفته باشن؟ چطور میتونم پیداشون کنم؟ من نمیدونم، نمیتونم بگم. میخواستم کسی را پیش او ببرم. میخواستم بروم در اتاقی که دراز کشیده بود و به او اطمینان بدم که یک نفر رو برات میارم گتسوی، نگران نباش، به من اطمینان کن. من یه نفر رو برات میارم. اسم مایر وولزفهایم توی دفتر تلفن نبود. خدمتکار آدرس دفتر او را در برادوی به من داد و من به اطلاعات تلفن زنگ زدم. اما آن وقت که من شماره را پیدا کردم ساعت خیلی از پنج گذشته بود و کسی به تلفنم جواب نداد. ممکنه خواهش کنم یه بار دیگه بگیرید؟ سه بار گرفتم تا حالا. آخه خیلی مهمه. متاسفم کسی اونجا نیست. به اتاق پذیرایی برگشتم و یک لحظه فکر کردم که همه این مقامات مسئولی که اتاق را پر کرده اند مهمان ناخانده گتسبی هستند و با اینکه ملافه را از روی صورت گتسبی کنار می زدند و با چشمهای وقزده زده به گتسبی نگاه می کردند باز هم گله گتسبی در ذهنم ادامه داشت که ببین رفیق قدیمی قرار بود یکی برم بیاری؟ باید هر طور شده یک کاری بکنیم من نمیتونم این نمی تحمل این کسی شروع کرد از من سوال پرسیدن ولی خودم را خلاص کردم و از پله ها رفتم بالا و با عجله نگاهی به آن کشه هایی که قفل نبودم انداختم هیچ وقت با اطمینان نگفته بود که پدر و مادرش مرده اند، اما اینجا هم جز عکس دانکدی چیز دیگری نبود یادگاری از سختی های فراموش شده که از بالای دیوار به من زل زده بود صبح روز بعدش، سرخدمتکار را به نیویورک فرستادم که نامهی به وولسف هایم میدهد که در آن خواسته بودم، اطلاعاتی از گتسپی در اختیارم بگذارد و اصرار کرده بودم با قطار بعدی بیاید. وقتی داشتم خواستم را در نامه مطرح میکردم، به نظرم رسید کارم بیفایده است، چون مطمئن بودم تا روزنامه ها را رو بخواند خودش می‌آید و تا قبل از ظهر هم تماسی از طرف دیزی خواهم داشت. اما نه دیزی تلفن کرد و نه خبری از ولف‌فایم شد. هیچ کس پیدایش نشد جز کرور کرور پلیس و خبرنگار و عکاس. وقتی سرخدمتکار از طرف ولف‌فایم برگشت کم کم نوعی حس مبارزه سراغم آمد. نوعی اتحاد بین من و گتسوی علیه بقیه. جناب کاروه عزیز این خبر یکی از وحشتناکترین شکهای زندگیم بود و به سختی می توانم باور کنم که این خبر راست باشد. اقدام واری که آن مرد انجام داد باید ما را به فکر بیندازد من نمی توانم آنجا بیایم چون درگیر مسائل خیلی مهمتری هستم و نمی توانم خودم را در این قضیه درگیر کنم اگر کاری بود که بعدها بتوانم انجام دهم فقط با نام توسط ادگار مطلعم کنید. وقتی خبر را شنیدم نفهمیدم کجا هستم و کجا نیستم به حسابی متلاشی شدم. ارادتمند مایر وولزفایم. و بعد با عجله پایین صفحه زمیمه کرده بود. در مورد تشییع جنازه و مراسم خبرم کنید. خانوادهش را هم نمی وقتی آن روز عصر تلفن زنگ زد و از راه دور کسی گفت تماس از شیکاگوست، فکر کردم این دیگر باید دیزی باشد. اما مردی پشت خط بود با صدای نازک و خفه. من اسلگل هستم. بله؟ اسم آشنا نبود. نوشته مزخرفی بود نه؟ تلگرافم رسید؟ هیچ تلگرافی نیمده. به سرعت گفت. پارک کوچیلو افتاده تو هچل؟ وقتی اوراق قرزه رو گذاشت رو پیش گرفتنش پنج دقیقه قبلش براشون از نیویورک یه بخشنامه اومده بود که شماره ها تو اون بود از این قضیه چی میدونی ها؟ تو این درودهات که نمیشه فهمید نفس زنان حرفش رو قطع کردم الو گوش کنید من گتسپی نیستم گتسبی مرده از آن طرف خط سکوتی طولانی برقرار شد که به دنبال آن فریادی از روی تعجب بلند شد و بعد تلق گوشی را گذاشت. فکر کنم روز سوم بود که تلگرافی با امضای هنری سی گتس از شهری در مینه‌سوتا رسید که میگفت فرستنده به سرعت حرکت میکند و خواسته بود که تشییع جنازه را تا رسیدن او به تعویق بیاندازند. او پدر گتسبی بود. پیرمردی موقر، بسیار ناتوان و ترسان که با وجود گرمای سپتامبر پالتوی ارزان قیمت پوشیده بود. چشمایش از حیجان اطراف را میکاوید و وقتی که داشتم ساک و چتر را از دستش میگرفتم، به سرعت دستش به نوازش ریش کمپشت خاکستریش پرداخت به طوری که به سختی توانستم کتش را در بیاورم. داشت از پا میفتاد. او را به اتاق تماشاخانه بردم و نشاندم روی صندلی به سرخدمتکار گفتم که چیزی برای خوردن بیاورد، اما او چیزی نخورد. لیوان شیر در دست لرزانش لب پر گفت خبر را رو تو روزنامه شیکاگو خوندم. همه چی را با طول و تفصیل نوشته بود. فوری را افتادم. من نمیدونستم چطوری شما رو پیدا کنم. چشمایش بدون اینکه چیزی را ببیند بی در اتاق می چرخید. گفت اون یارو دیوونه بوده بره شک ندارم که دیوونه بوده با خواهش گفتم یه قهوه نمیخورید؟ نه چیزی نمیخوام الان چیزی نمیخوام آقای کاروی بله الان چیزی میل ندارم جیمیو کجا گذاشتید؟ بردمش اتاق پذیرایی جایی که پسرش دراز کشیده بود و تنهایش گذاشتم چند پسر بچه از پله ها بالا آمده سالن را نگاه می کردند. به آنها گفتم پدر گتس بی آمده با دلخوری راهشان را کشیدند و رفتند چیزی نگذشت که آقای گتس در را باز کرد و بیرون آمد دهانش نیمه باز بود و صورتش کمی برفروخته از چشمهایش عشقهای نامنظم و با فاصله سرازیر بود دیگر به سنی رسیده بود که مرگ برایش قافلگیری ترسناکی به حساب نمی آمد. و حالا که برای اولین بار به دوروبرش نگاه کرد و شکوه و جلال آن سالن بلند و مجلل و اتاقهای درندشت و تو در تو را دید کم کم غروری به حالت قمزدش اضافه شد کمکش کردم تا به اتاق خوابی در طبقه بالا برود وقتی که داشت کت و جلیقش را در میآورد گفتم که همه برنامه‌ها برنامه ها تا رسیدن او به تأخیر انداخته شده است آقای گذبی نمیدونم چی ممکنه لازم داشته باشیم اسمم گتسه آقای گتس فکر کردم شاید بخواید جنازه رو به غرب منتقل کنید سرش رو به نشانه یه تکان داد جیمی همیشه شرق و دوست داشت این مقام و موقعیت رو هم تو شرق به دست آورد شما دوست پسرم بودید آقای بله به هم نزدیک بودیم آینده درخشانی داشت میدونید سنی نداشت ولی اینجاش حسابی کار میکرد و برای تأکید به سرش اشاره کرد و من هم به نشانه موافقت سرتکان دادم. اگه زنده میموند آدم بزرگی میشد یکی مثل جیمز جیهیل اون کشور رو میساخت. خیلی معذب گفتم همینطوره. رو تختی گلدوزی شده را کنار زد و خشک و رسمی دراز کشید و آنی خوابش برد. آن شب کسی که از صدایش پیدا بود خیلی ترسیده زنگ زد و تقاضا کرد قبل از معرفی خودش من خودم را معرفی کنم. گفتم کاراوی هستم. آه به نظر می رسید که شناخته است. من کلیپ سپرینگر هستم. شناختمش. به نظر یک دوست دیگر هم برای سر قبر گرس پیدا شد. نمی خواستم توی روزنامه ها بنویستم و جمعیت زیادی را برای گردش و تفریب بکشانم سر قبر. برای همین خودم به بعضی از دوستان زنگ زدم اما پیدا کردنشان کار راحتی نبود. گفتم مراسم فرداست ساعت سه همینجا توی خونه. امیدوارم به هرکی که فکر میکنین دوست داره باشه خبر بدین. با عجله گفت آه باشه البته بعید کسی رو ببینم ولی اگه دیدم میگم. طرز حرف زدنش مرا به شک انداخت. خودتون که میاییم سعیه او میکنم اما من زنگ زدم که حرفش رو قطع کردم. چرا میگید شاید خب راستش من اینجا تو گرینیچ پیشه یه عیدی هستم که انتظار دارم فردا رو هم بمونم یعنی یه جور پیکنیکه البته من همه یه سعی میکنم که بیام بی اختیار از دهانم در رفت زکی به نظر صدایم رو شنید چون با عثوانیت گفت من برای کفشام زنگ زدم فکر کنم خیلی مزاحمتی نباشه که پیش خدمت اونارو برام بفرسته ببین یه جفت کفش تنیسه و من بدون اونها هیچ کاری نمیتونم بکنم آدرسم هم همم اینه آقای بی اف بقیه حرفش را نشنیدم چون گوشی را گذاشتم بعد برای گتسبی متاسف شدم آلی جنابی که به او زنگ زدم به من اینطور فهماند فهمان که گذبی حقش همین بود البته تقصیر من بود چون او از کسانی بود که با دل و که حاصل مشروبهای خانه گتسبی بود بیشتر از همه او را مسخره می کرد و من نباید به او زنگ می زدم. صبح روز مراسم برای دیدن مایر وولزف هایم به نیویورک رفتم. به نظر می که از راه دیگری بتوانم او را ببینم. روی دری که با توضیح مأمور آسانسور آن را هل دادم و باز کردم نوشته شده بود شرکت سرمایه گذاری به شکسته. در نگاه اول به نظر نمی رسید کسی آنجا باشد. اما وقتی ناامید چند بار سلام کردم، از پشت یک پاراوان صدای جر و بحث به گوشم خورد و بلا فاصله یک دختر تودلبروی یهودی جلوی در پیدایش شد و با چشمهای سیاهش طوری ورندازم کرد که انگار دشمنش بودم. گفت، کسی اینجا نیست؟ آقای ورسم های برفتن شیکاگو. قسمت اول حرفش که آشکارا دروغ بود، چون یک نفر خیلی آهسته شروع کرد آهنگ روزری را با سوت زدن. به ایشون بگید آقای کاراوی میخواد ببینتشون نمیتونم که از شیکاگو برشون گردونم میتونم در این لحظه صدایی که بیشک وولز بود از آن طرف در گفت استلا دختر به سرعت گفت قسمتونو بنویستو بذاری روی میز وقتی که از شیکاگو برگشتم میدم بهشون. ولی من میدونم که ایشون اینجا هستن یک قدم سمت من برداشت، با عصبانیت دستهایش را روی کمرش گذاشت و با پرخاش گفت شما جوونا فکر میکنین هر وقت هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین؟ دیگه از دستتون سرسام گرفتم. وقتی میگیم رفت شیکاگو یعنی رفت شیکاگو دیگه. اسم گتس بیرا بردم. دختر چند بار نگاه هم کرد. آ گفتین اسمتون چی بود؟ دختر ناپدید شد. در همان لحظه مایر وولزفایم سنگین و رنگین آمد توی درگاه و هر دو دستش را به طرفم دراز کرد مرا به دفترش برد و با اعترام گفت که برای همه ما موقعیت است و یک سیگار برگ تعارفم کرد گفت همش یاده اولین دفتی میافتم که دیدمش یه سرگرد جوون بود که تازه از ارتش مرخص شده بود و سر تا پا پوشیده شده بود از مدال که تو جنگ گرفته اون قدر بود که پول نداش لباس بخره با لباس نظام میشه میپوشید اولین بار تو سالن بیلیارد واینبرنر تو خیابون چهل و سوم دیدمش دنبال کار میگشت چند روزی بود غذا نخورده بود گفتم بیا نهارو با من بخور و نیم ساعت اونقدر خورد که از چهار دلار هم بیشتر شد پرسیدم شما انداخنش تو کار نهره من ساختمش آه سعی؟ من اونو از هیچ و پوچ کشیدم بالا خوب شناخته بودمش دیدم جوون خوشبر و رویه شبیه جنتلمن ها بود و وقتی به من گفت از آکسفورد اومده فهمیدم خب میشه ازش استفاده کرد بردم عضو لژیون امریکایی ها کردم خیلی زود عرج و پیدا کرد و تندی یک کار برای یکی از مشتریام تو آلبنی انجام داد از اون وقت دیگه همیشه با هم بودیم دوتا انگشت پهن دستش رو بلند کرد. دوتایی با هم. با خودم فکر کردم که اگر... با خودم فکر کردم که این شراکت شامل گاو مسابقات بیسبال سال 1919 هم می شده یا نه؟ بعد از چند لحظه گفتم. حالا دیگه مرده. شما نزدیکترین دوستش بودین. می دونم که می امروز بعد از ظهر تو مراسم شرکت کنیم. نه دوست که دارم. پس میای؟ موی سوراخ بینیش کمی لرزید و در حالی که سرش را تکان میداد چشمهایش پر از عشق شد گفت نمیتونم بیام نمیتونم خودمو قاطی این قضیه بکنم چیزی نیست که قاطیش بشین یا نشین همه چی تموم شده وقتی کسی کشته میشه دوست ندارم هیچ جوری خودمو قاطی کنم خودمو دور نگه می‌دارم. وقتی جوون بودم وز فرق میکرد. اگه یکی از دوستان میمرد، حالا جوری، تا آخر کنارش میموندم. شاید فکر کنی این حرفم خیلی احساساتیه، ولی اینطوری بود. تا آخر آخر دیدم برای خودش دلایلی دارد که نمی‌تواند بیاید. بلند شدم. ناگهان پرسید: شما دانشگاه رفتید؟ یک لحظه فکر کردم میخواهد به قول خودش یک کاروباری به من پیشنهاد کند، اما او فقط سرش را به تایید تکان داد و با هم دست دادیم. گفت، باید یاد بگیریم دوستیمونم تا وقتی طرف زنده است نشون بدیم نه وقتی مرد. گذشته از این، روش من اینه که بعد مردن همه چی رو ول میکنم وقتی از دفترش بیرون آمدم، آسمان تیره شده بود و من زیر نم, نم باران به وست رسیدم لباس‌هایم را عوض کردم و به خانه همسایه رفتم آقای گتس بیقرار توی سالن بالا و پایین میرفت قروری که به پسرش و ثروت او داشت دم بدم بیشتر میشد و حالا میخواست چیزی را به من نشان دهد جیمی عکسو برام فرستاده بود و با انگشت‌های لرزانش کیف بغلیش را باز کرد نگاه کنی اکسی از خانه بود که گوشه هایش تا خورده بود و کلی جای انگشت رویش بود با اشتیاق هر گوشه از تصویر را برایم توضیح داد دیدین؟ و بعد در چشم دنبال تحسین گشت آنقدر این عکس را به همه نشان داده بود که به نظرم برایش از خانه هم واقعی تر شده بود جمی برام فرستادده بود به نظرم عکس خوبیه همه نشون داده آره تازگی ها پسرتون رو نایده بودیم؟ دو سال پیش اومد دیدن اما خونه که الان توش زندگی میکنم و برام خرید البته وقتی از خونه فرار کرد دیگه قطع رابطه کرده بودیم ولی الان میبینم که بی خود فرار نکرده بود میدونست آینده درخشانی پیش روشه از وقتی که وزش خوب شد با من خیلی سخاوتمند شده بود به نظر میرسید که نمیخواهد عکس را کنار بگذارد. یک دقیقه ی کشتار دیگر آن را جلوی من نگه داشت. بعد کیف بغلش را سر جایش گذاشت و دفتر مشق کهنه به نام هپلا کسیدی از جیبش بیرون کشید. نگاه کنین؟ این دفتریه که وقتی بچه بود داشت. همین همین همه نشون میده. صفحه آخر دفتر را باز کرد. و طرف من گرفت که ببینم. روی برگ آخر کلمه برنامه چاپ شده بود و تاریخ دوازده سپتامبر 1966. زیرش نوشته شده بود: بلند شدن از خواب 6 صبح، دنبال زدن و دیوار نوردی 65 تا 63، مطالعه برق و غیره 75 تا 85. کار 8 تا چه وسی بیسبال و ورزش چه وسی تا 5 تمرین فن بیان توازن بدن و راه رسیدن به آن 5 تا 6. مطالعه خلاقیت های لازم 7 تا 9، تصمیم های کلی وقت تلف نکردن با شفتترها یا یک اسم دیگر که قابل خواندن نبود سیگار نکشیدن و آدامس نجویدن حمام کردن یک روز در میان خواندن یک کتاب یا مجله مفید در هفته پسنداز کردن پنج دلار خط زده بود سه دلار در هفته رفتار بهتر با پدر و مادر پیرمرد گفت خیلی اتفاقی پیداش کردم. نشون میده چهجور آدم بود نه آره نشون میده معلوم بود پیشرفت میکنه همیشه تصمیم های اینجوری میگرفت. دیدیم چه تلاشی برای پیشرفت فکری داشت همیشه به اینجور جور مسائل اهمیت میداد یه بار به من گفت عین خوک غذا می خورم و منم کتاکش زدم دلش نمیخواست دفتر را ببندد هر کلمه را بلند میخوااند و بعد با اشتیاق به من نگاه میکرد فکر کنم دلش میخواست که آن لیست را برای استفاده خودم یادداشت کنم. کمی به ساعت سه مانده بود که کشیش لوتری از فلشینگ سر رسید و من به طور غیر ارادی چشمم به پنجره ها دوخته شد که ببینم ماشین های دیگری هم آمده اند یا نه. پدر گتسپی هم همینطور. زمان گذشت. خدمتکارها آمدند و توی سالان منتظر ماندند. چشم های پدر گذبی به حالتی پر استراب باز و بسته می شد و به طرزی نگران و مردد چیزهایی در مورد باران گفت. کشیش دو سه بار به ساعتش نگاه کرد. او را کناری کشیدم و از او خواهش کردم نیم ساعت دیگر مراسم را به تأخیر بیاندازد. اما بیفایده بود. هیچ کس نیامد.